به این سرود و استقبال بفرمایید با تکبیری با صدای بلند شیطان راجیم، بسم الله الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور صدق الله العظيم مردان خدا گوهر دریای وجودند بر گوهر ارزنده بهایی نتوان کرد در طول تاریخ هموار مردانی پای بر عرصه وجود نهاده اند که آوازه نامشن لرز برندام مستکبران جهان انداخته و صفحات تاریخ از نامشان مزین گشته است. اکنون برآنیم تا بایادی از مرد تاریخ پیر فرزانه و مسیحای مردمان این دیار حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله محفل من را پر نور گردانیم او که غصت پرداز لحظه های آشناخ و غزلخان دردههای کهن این سرزمین بود او که با یادش برگهای آرزوهای من برخصیدن در میآمد و نصیم مهربانیش سخاوتمندانه بر دل و جان من وزیدن می گرفت سلام خدا بر او که حقیقتا دریایی از عشق در وجودش نهفته بود نمیدانم از بر گل یاس بوی انبر دیگر نمی آید ای گل انفغان سحر از وجود پدر بر نمی آید قلوب از غم شیشه شکست از فراغ پدر دل به تنگ آمد قنون هرگز بر برخزان وجود نوبهاری اکثر نمی آید نمی دانم از بر گل بوی امبر دیگر نمی آید چرا ای گل انفان سهر از وجود پدر بر نمی آید قلوب از غم هم چشیش شکست از فرام پدر دل به تنگ آمد کنون هرگز بر خزان وجود بهاری اخزر نمی آید کنون هرگز بر خزان وجود بهاری اخزر نمی آید نمی دانم از بر گل یاس موی انبر دیگر نمی آید چرا ای گل هم فغان از وجود پدر بر نمی آید قلوب از غم هم چشیشش گذشت از فراغت در ذل بتانجامد کنون هرگز در خزان وجود نو بهاری آب نمی آید کنون هرگز در خزان وجود نو بهاری آب در کجا رفتی با غبان گل گل ستان وطن پیر فرزانه ز مشرق ان آفتا به شرف پاک خدا در نمی آید زمین از داغش به خود لرزید آسمان از غم خون فشانی کرد خدایا این شام بی پایان نا لو زاری سر نمی آید خدایا این شام بی پایان نا لو زاری سر نمی آید نمی دانم از بر گلیاس بوی انبر دیگر نمی آید چرا ای گل بغان سحر از وجود پدر بر نمی آید قلوب از غم هم چشیش شکست از فراغ پدر دل به تنگ آمد کنون هرگز بر خزان وجود نوبه هاری اخذر نمی آید کنون هرگز بر خزان وجود نو بهاری اخضر نمی آید به مسجد پرابا نگان خدا بهره گفتارش دور هم جمن چرا آخر شمع جان فروز باز به سوی منبر نمی آید علا ای زی جان روح باکت سوی خدا پیوست پدر جان جزمه مهرت دیگری بر ساغر نمی آید پدر جانا جزمه مهرت دیگری بر ساغر نمی آید نمی دانم از بر گل یاس روی امبر دیگر نمی آید چرا ای گل آن بغان سهر از وجود پدر بر نمی آید قلوب بس غم هم چشیشه شکست از فراغ پدر دل به تنگ آمد دون بر در خزان وجود نو بهاری آبزر نمی آید، نرگز بر خزان وجود. نو بهاری آبزر نمی آید، بلوچستان از روز پدر مثل ابر بهار گریه ها سردات. در خورشید شال افروزان آف بی برتر نمی آید. در این دنیا هم چو غمبر پاک و پاکیز زندگانی کرد به قول آن نائب برحق چون عزیزی ادهر نمی آید به قول آن چون عزیزی هر نمی آید نمی از بر گل یه انبر دیگر نمی آید جرا ای گل انفغان سهر از وجود پدر بر نمی آید قلوب از غم هم چوشی شکست از فراغ پدر دل به تنگ آمد کنون هرگز بر خزان وجود نوا باری افزار نمی آید قانون علم برخزان وجود نوا باری آخزر نمی آید مسیحای مردمان دیار روح ایمان بر جسم ما آورد ز و سوز دعای او دی و داد بر کش نمی آید خداوند روح رهبر ما در نعیم و بهش جاودان گردان که او در تو و سیل زمان چون شغای پر پر نمی آید که او در تو و سیل زمان چون شغای غپر پر نمی آید نمی دانم از بر گل یاست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 خنون هرگز بر خزان وجود بهاری اغزر نمی آید ره ایشان را ادامه دهیم با تمام وجود سرفرازانه یقین داریم یاد گارش را هیچ گزند از کافر نمی آید مایه اشراق ادر نوشات هر مسلمانی با خدا گردد شراب جانان ای ساغی با شراب کوثر نمی آید شراب جانان ای ساغی با شراب کوثر نمی آید جریدانم از بر گلیاس یام بر دیگر نمی آید چرا گل ام فقط نسهر از وجود پدر بر نمی آید او لو بسیم هم چشی شگفت از فراغ پدر دل آمد تنون هرگز بر خزان وجود نداری از در نمی آید تنون هرگز برخزان وجود نو بهاری آخر نمی آید، ایام خورشید مکی تا ابد بر ما مستدم گردان که جز او بر روی گیتی هر گز خطیبی آخر نمی آید. زعیم من خاک پای تو. دور رو مسای چشمان محمود است دگر ای گل و وصف دریایت در خیال احقر نمی آید دگر ای گل و وصف دریایت در خیال احقر نمی آید نمی دانم از بر گل بوی امبر دیگر نمی آید این <مسخن> چه در قل به تنگ آمد کنون هرگز وجود نوب احikes در نمی آید کنون هرگز بر خزان وجود نوبig احificar نمی آید کنون هرگز بر خزان وجود نوب برهری احifik نمی آید بکمی